گولبی، قونیه، نوزده همه جمادیال اول، و جان در بدن دارم روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد آخرین روزهای جمادی اول بود هوا رو به سردی گذاشته بود باد هوکشان مژده آمدن پاییز را با همه عظمتش میداد مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم هرگاه که لازم باشد برای چنین جماعت انبوهی سخن بگویم شنونده ها را نه به صورت صدها و هزاران انسان منفرد بلکه به شکل شخصی تنها می‌بینم هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرف هایم می میآیند. اما من تنها برای یک نفر سخن می گویم. پیش خودم میگویم آن انسان تنها به پژواک حرفهایم گوش می دهد و تنها اوست که صدایم را میشنود به این ترتیب حرف میزنم. پس از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم دیدم اسبم را آماده کرده به یالش نخهای طلایی و زنگوله های نقره آویختند دوست دارم در هر قدمی که اسب برمی‌دارد صدای نامحسوس زنگوله ها را بشنوم اما با آن همه جمعیت که راه را بند آورده بودند پیش رفتن غیرممکن بود من و طلبه در پیش و گروهی بزرگ در پس گام به گام و به کندی از جلو خانه های نیمه ویران و دکانهای کوچک گذشتیم که مثل قوطی کنار هم ردیف شدند. در اطرافم هنگامی برپا بود. دادغال کسانی که اطراف مسیر جمع شده بودند با ناله کسانی که میخواستند ارزهال بدهند نقنق بچهها با تشر پدر و مادرها آواز فروشندهها با فریاد گداها در هم میآمیخت بیشتر این آدمها میخواهند برایشان دعا کنم. بعضی هایشان هم فقط میخواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند البته کسانی هم هستند که خواستههای بزرگتری دارند از آنهایی که میخواهند برای بیماری لاعلاجشان شفایی بیابم بگیر تا آنهایی که خواهش میکنند باطل و سحری به ایشان بدهم همینها نگرانم میکنند مگر نمیبینند نه پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لقمان تا شفا ببخشم به اینها می میکردم و پیش میرفتم وقتی از سر کوچه پیچیدیم و به کاروان سرای شکرچی نزدیک شدیم در ویشی دیدم که نگاه های نافظش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار میزد به طرفم میآمد. در حرکاتش استواری کسانی دیده میشد که میدانند هدفشان چیست و به سوی آن میروند. حیعتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت تنها بود نه فقط در این لحظه بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده نگاه کردم مو و ریش و ابرو نداشت صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشد اما با وجود این حالتی رازآمیز داشت نمیشد خواندش چیزی که باعث جلب توجهم شد ظاهر درویش نبود اونیه محل رفت و آمد درویش های سیاه هست درویش های گوناگون که پی حق میگردند آمده اند و گذشته اند از این شهر انواع و اقسامشان را دیدم با خالکوبی چشمگیر روی دست و بازو، با حلقه های ریز و درشت آویخته به گوش، با شاخ و شیپور آویزان از گردن. از این رو اولین بار که دیدمش، لباس و ظاهر این درویش نبود که باعث حیرتم شد، نگاهش بود که جذبم کرد. نگاهش از خنجر تیزتر بود. دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. انگار قصدش نگه داشتن زمان بود، نه من و گروهی که از پیم می آمدند. یک باره تمام تنم لرزید. انگار ستاره از قلبم فرو افتاد. اسبم آشفته شد، سم بر زمین می و شیهه میکشید خواستم آرامش کنم، نتوانستم. روی پاهای عقبیش بلند شد. چم مانده بود به زمین بیندازدم. درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد. اسب فوراً ایستاد و آرام گرفت. من خرینش را باز کرده بود و تون تون نفس می کشید. جماعت اطراف من نفسها را در سینه حبس کرده و شاهد ماجرای پیش رویشان بودند. پش ها را شنیدم. این مرد جادوگر است. اسب را جادو کرد. درویش اما طوری به نظر می رسید انگار از اطرافش خبر ندارد حالا چشمانش را به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاهم میکرد. گفت ای علامه دهر مولوی ای مولانا یبی همتا در شرق و غرب عالم درباره سخنانی نیکو شنیدم هم. این همه راه آمده هم تا سؤالی از تو بپرسم البته اگر اجازه بدهی. آرام گفتم البته بپرس. در این صورت نخوست از اسبت پیادشو تا هم تراس باشی. این را که شنیدم چنان شگفت زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم. اطرافیانم همه حیرت کرده بودند. تا آن روز کسی جرعت نکرده بود با من این طور صحبت کند حس کردم خون به صورتم دویده حتی حس کردم عصبانی شدم و قلبم فشرده شده با این حال بر نفسم حاکم شدم و از عصب به زیر آمدم اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور میشد. به او رسیدم و نگهش داشتم. آهای، صبر کن، میخواهم سوالت را بشنوم. درویش یک دفعه ایستاد. برگشت و برای اولین بار تبسمی بر لبش نشست. گفت، به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است؟ حضرت محمد یا بایزید بستامی با عصبانیت گفتم این چه سوالی است پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم را با صوفی یک لاقبا یکی میدانی جمعیتی کنجکاف دور و برمان را گرفته بودند اما درویش انگار به نظاره کنندگان اهمیتی نمیداد بی که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد خوب فکر کن مگر حضرت پیامبر اینگونه نفرموده اند که ای پروردگار تو را ستایش می کنم چندان که شایسته است نشناختمد حالانکه که با یزید وستامی گفته است خود را ستایش میکنم کنم مرتبه ام متعالی است زیرا خدا را در خرقه دارم یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خدا را در درونش دارد. به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است؟ یک باره نفسم بند آمد. آب دهانم را گورت دادم. سوالی که در نظر اول یاوه به نظر می رسید، ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتند و چیستانی جذاب هویدا شد تبسمی گذرا در چهره درویش دیدم دیگر میدانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست صادقانه از من چیزی میخواست میخواست به سوالی بیندیشم که قبلا به آن نیندیشیده بودم گفتم منظورت را فهمیدم. این دو کلام را با هم مقایسه می کنم و میکوشم کوشم اثبات کنم با آنکه حرف بستامی به نظر تر می رسد اما حرف حضرت محمد از آن والاتر است. درویش گفت سراپا گوشم. گفتم عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب برمی‌دارد اینکه هر کسی چه قدر آب برمی دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد یکی ظرفش خمره است یکی دلو یکی کوزه دیگری پیاله همانطور که من حرف می‌زدم حالت چهره درویش هم به تدریج عوض میشد کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش هویدا شد که خاص کسانی است که پژواک اندیشههای خودشان را در حرفهای دیگری می‌یابند. ظرف بستامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود. او یک جرعه خورد و سیراب شد. با همان یک جرعه شاد و سرمست شد. چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است حتی در آن مرتبه نیز خدا با نفس یکی نیست و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمیشود. از این روست که خدا در قرآن میفرماید آیا سینه اترا را برایت نگشودیم سینه اش که چون این گشوده شد یعنی ظرفش که بزرگ شده تشنگی سیری ناپذیر در درونش حاصل آمده بیهوده نیست که میگوید چندان که شایسته است نشناختم حالان که دیار البشری خدا را مانند او نشناخته. درویش آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد. سرش را خم کرد و سلام داد. بعد به نشانه سپاس گذاری دستش را روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند. دوباره که سر بلند کرد در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاهم می کند. با احترام در مقابلم تعظیم کرد من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم نمیدانم چه مدت در همان حال ماندیم آسمان دیگر به سرخی میزد جمعیت در اطرافمان ناآرام بود در گوشی چیزهایی میگفتند و انگار آرامش نداشتند اتفاقاتی را که بینمان رخ داده بود ابتدا با کنجکاوی سپس با حیرت تعقیب کرده بودند اما سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود چون تا آن هنگام ندیده بودند در برابر کسی سرخم کنم. مریدهایم خوششان نیامده بود از این که در مقابل درویشی عادی تعظیم کرده به گمانم درویش ناخوشنودی جماعت را حس کرده بود چون با صدایی شبیه پچپچه پش گفت بهتر است من دیگر بروم تو را از طرفدارانت جدا نکنم نفهمیدم در ددلی پنهانی بود در این حرفش یا تنزی ظریف اما فورا اعتراض کردم پشت سرش فریاد زدم بیست. نرو بمان برگشت با دقت به صورتم نگاه کرد انگار ابری از چشمانش گذشت لبهایش را سخت به هم فشرد انگار می‌خواست چیزی بگوید اما نمی‌توانست و در آن لحظه در آن سکوت سؤال اصلی را که درویش از ابتدا از من می‌پرسید سؤال پنهان و خاموش را شنیدم و تو ای خطیب بزرگ ظرف توش چه اندازه است گامی به سوی درویش برداشتم آنقدر نزدیک شده بودم که می توانستم برق شیدایی ششمهای سیاهش را تشخیص بدهم. یک دفعه دوچار حسی غریب شدم. انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم. تازه یک بار نه شاید ده بار. شاید چهل بار. تصاویری تکه پاره در ذهنم به پرواز درآمد. مردی دراز و لاغر با روبندی بندی به صورت انگشتانش گ گر گرفته و می سوزد. در آن لحظه بود که فهمیدم: فهمیدم در ویشی که جلوم ایستاده همان مردی است که در خواب میدیدم و کسی او نیست. می جانم و جانانم را یافتم. زانوانم از شادی لرزید. اما در زندگی هیچگاه چنین شادی حس نکرده بودم. انگار نصف نیمه و زخمی بود. حتی هنگام شادی وحشتی عمیق درونم را هم باشد.